داستان کتوله بیشزار یکی بود یکی نبود پسرک کشاورزی بود به نام تام که خیلی تنبل بود و علاقهی به کار کردن نداشت تام نزد مرد ثروتمندی کار میکرد اما اون به جای کار کردن از صبح تا شب روی سبزه ها دراز میکشید و استراحت می کرد. تام در مزرعه وظایف گوناگونی داشت روزی مهتری اصپا رو میکرد روز دیگه وسایل کشاورزی رو تمیز میکرد وظیفه دیگرش غذا دادن به مرغها بود اون در حقیقت همه کاره و هیچ کاره بود تام مهارت به خصوصی در هیچ کاری نداشت چون به هیچ کاری علاقه نداشت اون فقط وظایفش رو انجام میداد و نه بیشتر و نه کمتر. اگه کاری رو خوب انجام میداد، دوستاش ازش راضی می شدند و اگه حقوق کافی به او میدادن، قانع میشد. به جایی مطالعه کردن در ساعت بیکاریش، پیاده به طرف بیشزار را میافتاد و گاهی وقتا لب آبگیری که دور از مسیر جاده بود، می مینشست. در یکی از روزهای روشن و آفتابی تابستون تام مثل همیشه به طرف آبگیر رفت همونطور که میرفت ناگهان صدای ناله ای شنید به طرف صدا رفت اما کسی رو ندید به این طرف و اون طرف رفت و با دقت همه جا رو نگاه کرد اما باز بازم کسی رو ندید به فکر فرو رفت با خودش گفت این صدای چی بود؟ از کجا اومد؟ شاید صدای پرنده بود. صدای ناله دوباره بلند شد. مثل صدای گریه یه بچه بود. تام لابلای بوته ها و درختها رو گشت. به چمن ها لگت زد. بوته بزرگ رو از ریشه بیرون آورد و با دست لمسشون کرد تا اینکه سرانجام خسته شد و به نفس نفس افتاد صدا بازم به گوشش خورد دام این بار گوشش رو به زمین چسبوند و گوش کرد. به نظرش رسید که از دیر زمین صدای گریه خفیفی میاد با صدای بلند فریاد زد تو کی هستی؟ کجایی؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ صدا با گریه گفت زیر سنگ بزرگی که بالای آبگیره تام نگاه کرد بالای آبگیر سنگ بزرگی رو دید که تا نیمه در گل فرو رفته بود و لابلای های خشک مخفی شده بود تام با عجله به طرف سنگ رفت و اونها رو هل داد اما سنگ سنگین بود تام با تمام قدرت و نیروی جوانیش فشار آورد هلده تقلا کرد نفس نفس تا سر تا سرانجام سنگ به گلها چسبیده بود که از جا کنده شد. تام روی زمین نشست و یه لرزشی سر, سر بدنشو گرفت. تام عرقی رو که از سر و روش سرازیر شده بود پا کرد و زیر سنگ رو نگاه کرد. ناگهان از ترس از جا پرید و نفسش بند اومد. مرد کوتولویی رو دید که صورت قهوه‌ای چروکیده مثل یه تیکه چرم کهنه داشت و ریش زردی که تمام بدنش رو پوشونده بود. تام با تعجب مرد نگاه میکرد. زبونش بند اومده بود. بلاخره با من و من من برای نجات شما خیلی تلاش کردم. مرد کتوله با فریاد گفت نزدیک بود این زیر بمیرم دو چشم مشکه بر که مثل الماس می درخشید برزد اون وقت ادامه داد من هیچ این کار تو رو فراموش نمیکنم. هرگز اگه تو سنگ رو برنداشته بودی من تا ابد اینجا می‌موندم. بعد با یک جزد از گودال بیرون پرید تام از ترس یک قدم عقب رفت و توی آبگیر افتاد و فریاد زد جلو نیا تو دیگه چه موجودی هستی من از تو می ترسم گفت از من نترس من کاری با تو ندارم فقط میخوام کمکت کنم تام گفت من باید مزرعه برم تمام کارها من مونده کوتوله گفت صبر کن تام من باید خوبی تو رو تلافی کنم تو باید پاداش این کارت رو بگیری حالا هر خواهشی داری بگو من هر آرزوی که داشته باشی برآورده میکنم تام وقتی این حرف رو شنید خوشحال شد و به فکر فرو رفت کتوله گفت دلت میخواد یه زن خوب و زیبا داشته باشی؟ زنی که غذا تو گرم کنه و از تو مواظبت کنه؟ تام با عجله گفت نه نه من زن نمیخوام به نظر من مرد بدون زن راحت تره. کوتوله گفت نظر درباره یکیسه طلا چیه؟ یکی دوتا شایدم ده تا. تام بدون هیچ اشتیاقی گفت بس کن. این همه پول به چه درد من میخوره؟ بام چه چیزی رو میتونم بخرم؟ کوتوله که خیلی عصبانی شده بود با اخب گفت نه زن نه تلا پس چی میخوای؟ تام سرش رو خاروند و گفت خودمم واقعا نمیدونم کتوله با خوشحالی به هوا پرید و گفت حالا فهمیدم من میتونم تو کارهای مزرعه کمکت کنم تو راحت میتونی در گوشه استراحت کنی و من کارها تا انجام بدم چطوره؟ تام فریاد زد خوبه خیلی خوبه اینطوری میتونم تمام وقتم رو در بیشزار بگذرونم گفت حالا که قبول کردی باید بدونه که از این به بعد منو نمی بینی گفت: اما اگه من به احتیاج داشتم چی؟ کوتوله گفت: کافی منو صدا کنی. اون وقت توی چشم به هم زدن حاضر میشم. قبل از اینکه تام سوال دیگری بکنه، کوتوله گل زردی رو فوت کرد و ابر نازو که چشم تام رو گرفت و، کوتوله ناپدید شد تام چشماشو مالید بعد محکم روی دستش زد تا مطمئن بشه که خواب نیست اون وقت به طرف مزرعه را افتاد صبح روز بعد با صدای خروس از خواب بیدار شد قبل از هر چیز به یاد کوتوله و حرفاش افتاد اون وقت با تنبری از جاش بلند شد و به طرف استبل رفت تا از پا رو تیمار کنه اما وقتی وارد استبل شد از تعجب دهنش بازمود تمام کارها انجام شده بود و از پا به خوبی تیمار شده بودند وقتی به سراغ گاف ها رفت تعجبش بیشتر شد چون شیر گاوها دوشیده شده بودند و حتی ابزار کشاورزی تمیز شده بود و زیر نور خورشید صبحگاهی درخشید. تام که از خوشی روی پاش بند نبود با خودش گفت کوتوله همه کارها را انجام داده به قولش عمل کرده. به این ترتیب روزها به دنبال هم می گذشت و تام تنبل کاری انجام نمیداد. اربابش به خاطر سرعت در کارها ازش تعریف میکرد و خیلی ازش راضی بود. تام درباره مرد کوتول با هیچ کس حرفی نزده بود. اگرچه کارهای تام به خوبی انجام میشد اما به ضرر کارگران دیگه تموم میشد. هر روز صبح سطح های تام پر از آب میشدند اما در عوض سطح های کارگران دیگه در گل سرنگون میشدند. مسایلی که کارگران شب قبل تمیز کرده و کنار گذاشته بودند، همه زنگ میزد و پوند می شد و نمیشد با اونها اصلا کار کرد. بعد از مدتی کارگرها به تام مشکوک شدند. هر وقت به طرفشون میرفت اونها روشونو رو برمیگردوندند ازش دوری میکردند. هیچ کس به طرفش نمیرفت. اونها تام رو سبب بدبختی‌هاش میدونستن و کم کم از اون پیش ارباب بدگویی کردند. یه روزم رفتن سراغ تام و به اون گفتند که کار خوبی نمی‌کنی. تام غمگین شد و با خودش گفت همه این کارها زیر سر کوتول است. باید از این به بعد خودم کارهام رو انجام بدم. اون وقت جارو رو برداشت تا اتاق رو جارو کنه اما ناگهان جارو از دستش رها شد و دورش چرخید و دو گوشه گوشهای افتاد مثل اینکه جادو شده بود تام دوباره جارو رو برداشت اما بازم جارو از دستش رها شد و همون اتفاق قبل افتاد تام ناامید و غمگین در گوشه نشست و به فکر فرو رفت در همین موقع یکی از کارگرها به سراغش امد و گفت ارباب با تو کار داره رنگ از روی تام پرید با عجله بلند شد و به طرف خونه ارباب رفت. ارباب با عصبانیت توی اتاق قدم می زد. تام سلام کرد و وارد اتاق شد. ارباب فریاد زد. واقعا که خجالت آوره. تو برای اینکه که خودت رو لایق نشون بدی کار دیگرون را خراب می کنی؟ نمیذاری کارهاشون رو انجام بدن؟ من به کارگری مثل تو احتیاج ندارم. همین حالا از اینجا برو تام گفت: ولی ارباب گفت: ولی نداره. همین که گفتم تام غمگین و ناراحت را افتاد و از اونجا دور شد. اون از دست کتوله به شدت عصبانی بود و با خودش میگفت اون باید اون چیزی رو که من میخواستم انجام میداد نه این که باعث ناراحتی دیگرون می شود. اون میرفت و با خودش قرغار می کرد. ناگهان یاد حرف کتوله افتاد و هیجان زده فریاد زد. آهای کتوله بیشزار بیا پیش من. هنوز حرفای تام تموم نشده بود که کتوله ظاهر شد. تام از ترس عقب پرید. بعد با عصبانیت جلو رفت. کتوله با اون چهره چروکیده و ریش دراز و زردش، با اون چشمای قرمز و درخشانش اونو نگاه میکرد. تام گفت من به کمک تو احتیاجی ندارم. دست از سر من بردار. کتوله پرسید برای چی؟ تام گفت دلم میخواد کارامو خودم انجام بدم. اونقدر عصبانی بود که دلش میخواست کتوله رو بگیر و به شدت بتکوندش. کتوله فریاد زد، این غیر ممکنه این چیزی بود که خودت خواستی تام گفت اما الان دیگه نمیخوام بهتر دست از سرم برداری کوتوله گفت من نمیتونم به تو کمک نکنم اما نمیتونم هم تو رو ترک کنم تام گفت تو باید منو ترک کنی این من بودم که تو رو نجات دادم کوتوله با صدای ریزی جیغ کشید و گفت بله میدونم، هیچ وقتم فراموش نمی کنم اما من مدت ها زیر سنگ بودم و نمی تونستم کسی رو عذیت کنم تام گفت منظورت اینه که تو دوست داری دیگران رو اذیت کنی کتوله با خوشحالی بالا و پایین پرید و فریاد زد بله بله من کارو دوست دارم این کار اصلی منه خیلی دوست دارم بعد دور تام چرخید و گفت ای نادون من اینجا اومدم تا به تو بگم از حالا به بعد کمکت نمیکنم اما اینم بدون که دست به هر کاری بزنی خراب میشه بعد با حرکتهای عجیب و غریب خودش سعی کرد تام رو بترسونه بیش زرد و درازش مثل پرده ای در هوا تکون میخورد و نزدیک بود تام رو خفه کنه کتوله گفت منو وقت فراموش نکن پسر که نادون ناگهان ابر زرد و نازوکی جلوی چشمای تام رو گرفت و کوتوله ناپدید شد از اون روز به بعد تمام چیزهایی که کوتوله گفته بود اتفاق افتاد هیچ کدوم از کارهای تام به خوبی انجام نمی شد استب رو تمیز می کرد اما استب کسیف می شد ها در استب نمی و رو که برق مینداخت همه زنگ می زدن و کشاورزا نمیتونستن با اونها کار کنند. این بدبختی بزرگی برای تام بود. هنوزم که هنوزه کتوله دست از سر تام بر نداشته و تام بیچاره مرتب از این طرف اون طرف می رو و در مقابل مقداری غذا سرگذشت غمنگیز خودش رو تعریف می کنه. امیدوارم که از داستان امروز لذت برده باشید تا داستان دیگر بدرود سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی